بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد بدون شاك محبوب ترين جانز الله جل وعلا برية زمين مساجد هس من ببغو السرينة جاء الله جل وعلا بوزره هس وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وأن المساجد لله مسجد برية الله جاي هس كمؤمن برای سر به سجده نهادن برای الله جل و علا در اون جا حضور پیدا میکنه و بندگی الله را جل و علا به جا میاره این شرفه، این مقامه برای مؤمن که توفیق سجده کردن برای الله جل و علا را پیدا بکنه بشینه در مسجد و سر به سجده به الله جل و علا بذاره سر ذلت سر نیاز، سر حاجت پیشانیش را بر روی زمین بذاره بگه بار الله بندتم محتاجتم محتاج درگاهتم یک قسمت بحث اینکه مسجد الله جل و علا به شرف داده جایگاه داده در اسلام و برای اونم تشویق کرده برای حضور در آن و احادیثی وارد شده که ان شاء الله را خواهیم خوان در ضمن آداب و احکام حضور در مسجد آداب احکام مساجد چه آداب و احکامی هست در حادیث به اشاره شده که تک تک ماها باید بدونیم قبل از اینکه وارد بشیم خود آداب احکام آداب احکام مساجد ما باید بدونیم همونطور که مسجد برای الله و شریفترین جاها بر روی زمین مساجد برای الله بدترین ظلم منع از یاد الله در مسجده چنانچه الله جل و علا در قرآن میگه من اظلم من منع مساجد الله یا یاد فی هسمه و سعه فی خرابه بدترین ظلم منع از نماز از طاعت از ذکر الله در مسجد. همونطور که شریف ترین عبادت ها سر و سجده نهادن و الله و نماز و برپایی این شعیره است بدترین ظلم و گناه هم من از اینه و خرابی مسجد و ویرانی مسجد و عدم آبادانیش با نبود نمازگزاران در مسجد وقتی که فسق و فجور زیاد بشه وقتی که مردم مجبول دنیا بشن و روی گردان از عبادت و طاعت بشن روی گردان از مسجد بشن این سعی در خرابی مسجد، این عدم حضور در مسجد و عدم انگیزه برای زنده کردن مسجد با ذکر و یاد الله جل و جرم جنایته و من اغلو ممن منع مساجد الله یعنی یذکره فی اسمه و سعه فی که چه ظلمی بلاتر است بخاطر همین مسجد باد آباد بشه و مسجد را کسی آباد میکنه با ذکر و یاد الله که چیه؟ که اهل خداست. انما يعمر مساجد الله من امن بالله ایمان به الله جل و علا سبب میشه که مسجد آباد بشه عدم ایمان مسجد چی میشه خراب میشه مسجد تبدیل به خرابه میشه ویرانه میشه اون کسی که همیت به مسجد نمیده همیت به آبادانی مسجد نمیده همسایگان مسجد رو تشویق نمیکنه به مسجد حاضر شدن و اهمیت نمیده به کسی دعوت بده که بیان به مسجد این شخص بر روی آبادانی مسجد تلاش نکرده در راه آبادانی مسجد قدم بر نداشته ما وقت قدم برداریم مسی آبادانی مسجد آبادانی مسجد نشانه ای ایمانه. ایمان انما و المساجد الله من امن بالله ایمان به الله سبب میشه که مسجد رو ما آباد بسازیم آبادش بکنیم زندهش بکنیم با ذکر و یاد الله جل و علا ما احادیث یاد داریم در شأن فضیلت حضور در مسجد شأن فضیلت ذکر و یاد الله در مسجد حلقات ذکر در مسجد غیر از اون نمازش همه این ها رسول الله صلی علیه و وسلم بهش تشفیخ کرده احادیثی در شأنش وارد شده که من اینجا فقط گذراز عبور میکنم اولین حدیث فرمدير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ما اجتمع قوم هيچ قوم نسان قروه نسان در مسجد حاضر بشان مسجد يزم الساجدك بروري زمين بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بيان آيات الله رتلواد بكنا ويتدارسونه بينكم بيان مزاكرة ومراجعش بكنا إلا نزلت عليهم السكينة الله جل وعلا أزباب قاداش سکینت را بر قلب آنها، بر اون جمع نازل میکنه سکینت، سکون، تومعنینه، آرامش بر قلب اون اشخاص نازل میشه و غشیت هم رحمه، رحمت اونها را فرا میگیره اونها جز مرحومین از بندگان الله جل و علا میشه یعنی مشمول رحمت الله جل و علا میشه دنیا ملعونه چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرم ملعونه یعنی <تصفيق> <تصفيق> مطرودة أز رحمته اللهي يعني محرومة أز رحمته اللهي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هرتش برزمين ملعون. إلا ذكر الله وما ولا أو عالما أو متعلما إلا ذكر الله يود الله وما ولا إما ما أحبه لونجتك الله تيسر أو عالما أو متعلما يا عالمي كعلم رمي يا مزماردم يا متعلمي كمية علم الشرح يود ميقرة إنها مرحومين ملعونیم نیستن ملعونیم کیان کسانی که الله بغضشون داره اونهایی که دنبال ذکر و یاد الله نیستن و دنبال علم شرعی نیستن دنبال مساجد نیستن پس یکی از راه های نجات از خشم و غذب الهی لعنه الله جل و ملعون شدن به درگاه الهی یک از راه های نجات از اون چیه؟ حضور در مسجد حضور در حلقات علم و غشیت هم و الرحمة. این سبب میشه که انسان مشمول رحمت اللهی بشه وحفتهم الملائكة ملائكة هم قردو قردون هم حلقه بزنان وذكرهم الله في من عنده سبحان الله كطور يعني انسان شرف فيدا میکنه نظر الله جل وعلا باية عمل نوتيز بيوت در مسجد حضور فيدا بکنه حلقه علم ذكر بشينه و جل وعلا باون بنده مقام و شرف بده به درگاه خودش نزد ملایکه از اون بنده یاد بکنه فلانی در مسجد شسته برای یاد من من براش مهم بودن پس او هم برای من مهمه حزیز میشی به درگاه الله جل و علا با علم شرعی با علم به احادث رموانات گذرا سریع همینطوری بدون فهم محتوای اون از کنارش رد بشید رسول الله صلی الله علیه و سلام از وحی داره صحبت میکنه اون سخنانی که الله جل و علا بهش وحی کردن. بشینیم با خودمون یکم با تأنی روی این کلمات فکر بزنی و ذکرهم الله فی من عنده الله یاد اون بنده میکنه نز آنانی که نزشن از فرشتگان و از غیره که نزشن ذکرهم الله الله یاد اون بنده میکنه عزيز شدي شريف شدي محبوب بالدرقاء الله جل وعلا شدي دومين حديث أزالحاديثي كدر شأن مسجد والجمشدان در مسجد وأهمية بمسجد ومدير رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته أو حجته من غدا إلى المسجد كثير صفقاء بيوت بمسجد دار روس بيوت بمسجد اومدنش به مسجد هدف از اومدنش چیزی جز تعلیم یافتن یاد گرفتن و یا تعلیم دادن یاد دادن نباشه هدف یک چیز جزئی نداره یا یاد بگیری یا یاد بده اجرش و پاداشش چیه کان لهو ک اجر حاج اجری یک حاجی رو داره اجر حاجی چیه کسی که در سرزمین عرفه اونجا توفیقش رو پیدا میکنه و اون لیاقت و شرف که 20 رجعك يوم ولادته امه برميغد از اون جایگاه از اون جایی که الله جل جلاله مشخص کرده برای ایستادن در اون در روز عرفه برمیگرده همچون نوزادی که تازه از مادر اجیده کل گناهانش بخشیده شده با اومدن دو مسجد به یاد دادن یا یاد گرفتن اجر یک حج کامل حج من حجته اون حاجی که حجش کامل شده اجر اون حاجی رو داری که حجش رو الله پذیرفته عملی اندک سواب و پاداش و اجری بسیار چیزی نیست آدم وقتی برای خودش بذاره در مسجد برای مطالعه کتابی حالا خودش یه چیزی یاد بگیره یا در درسی شرکت بکنه لازم نیست که شیخی باشه درسی داشته باشه همون کتاب خوندن همون مطالعه همون تلاوتت به قرآن سبب میشه که این شرف را پیدا بکنی این اجر و پاداش را بهش دست بیابی و در روایت دیگه داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا او يعلمه كانك المجاهد في سبيل, اللہ اللہ برای برای اللہ اللہ المجاهد في سبيل. الله کسی مسجد منعزورش این مساجد حالا اون موقع مسجد خود رسول الله علیه و بوده کسی بیاد برای تعلیم برای یاد گرفتن و یا یاد دادن میفرمایا رسول الله کانك المجاهد مجاهد سبيل الله یعنی کسی واسه در راه الله جهاد کرده پاداشش اجر و دو تا حدیث اولی در صحیح مسلم بود این حدیث نظم و محمد، حالا احادیث زیاده، مثلا ما در سیحین داریم از حدیث بحریر رضی الله عنه می رسول الله سو سنه فرمودن من غدا إلى المسجد او راحة عد الله له في الجنتی نزولن كلما غدا او راحة من غدا إلى المسجد او راح کسی صبگاه بیاد به مسجد یا شامگاه بیاد غدا از غدوه صبگاه و رواحم اومدن به شامگاه صبح و شام شب و روزش تو بخوای بیای مسجد سبب میشه که چی؟ که نزد الله جایگاهی مرتبه پیدا بکنی اعد الله له فی الجنه الله جل جلاله در بهشش براش یک جای قرار میده که پذیرایی بکنه از اون کسی که به زیارتش اومده به زیارت مسجدش اومده الله جل جلاله اسباب وسایل پذیرایی در بهش را براش در بهشش محیا میکنه چطور انسان از مهمانش پذیرایی میکنه با میوه با, با تنقلات با نهار و شام تو مهمان الله جل و علا. الله جل و علا به خاطر که تو اومدی به زیارت الله به مهمانی الله الله جل و چطور تکریم میکنه از مهمانش چونه پذیرایی میکنه با بهترین پذیرایی در بهش برای اون بنده از اون بنده پذیرایی میکنه و براش مهیا میکنه اعد الله له في الجنه نزول اون چیزی که آماده میشه برای مهمان کلم غدا و راح یعنی هر گاه بیا صبح گه شام شب و روزتون پنج بعد نماز هر بار اومدیتو مسجد مهمان خدایی الله در مقابل اومدنت و قدم برداشتند به خاطر الله جل و علا الله مجلسی از عز پذیرا برای در بهش گذاشته همونطور که ما در سبحان الله به حمد داریم تو بخوای بگی یک نخلی برای در بهش گذاشته میشه اینجا هم مجلسی از پذیرایی را برات الله جل وعلا در بهش مهیا میکنه. این تنوع را برات گذاشته در مقابل هر عبادتی تو نشی در بهش تا روزمرگی نداشته باشی انواع پذیرایی را الله جل وعلا برات مهیا میکنه از جایی به جایی دیگر از مجلسی به مجلسی دیگر از جمله حدیث منجومین حدیث حدیث سلمان فارسی هست البانی در صحیح ترگرم تأثیرش میکنه حدیث شماره 3 فرمایان رسول الله صلی وسلم من توضع فی بيته فاحسن احسن الوضوح ثم ات المسجد کسی بخوبی وزو بگیرد سپس بیوت بمسجد فهو زائر الله و به الله مده و مهمان الله و حق على المزور و کسی که الان به زیارتش رفته و کسی که به زیارتش ما رفته من یکرمزار حق بر الله که ما به زیارتش رفتیم اون مهمان را اکرام بکنه الله این حق را بر خودش بزید ما این حق را برش نگذاشتیم الله جل و علا این حق را بر خودش گذاشته که از اون مهمانش پذیرایی بکنه انسان میشه مهمان الله جل و علا وقتی که انسان می مهمانی میره از ادب اینه که چی؟ از ادب اینه که مهیا بکنه خودش با اون وضوی درست گرفتن دقیق و مرتب گرفتن با لباس خوب محتر شدن والا این میاد در حدیث الله به ششاره خواهد شد انسان باید حق این مقام را خوب به بیاره و خودش را آماده بکنه برای این مهمانی و این پذیرایی الله جل و علی ازش حدیث این حدیث هاش زیاد شما شنیدید والا یک تکش برای ما مهمه حدیث سبعتون یو الله تحت ظلیه و دربتی و تحت ظل, ظل عرشی يوم لا ظل الا ظلو هفت نفرن الله در زیر سایه عرش خودش در روز قیامت روز حشر الله جل و علا در زیر سایه عرش اونها رو پناه میده در اون روزی که روز عذابه همه از قبل بیرون اومدن الله کسانی رو پناه میده از خش از عذاب و عقوبتش یکی از اونا که رجل قلبه معلق في المساجد مردی که قلبش آبیخته هست قلبش وابسته به مسجده وابستگی داره به مسجد قلبش وابسته به مسجده نماز منتظر نماز بعدی سهب میشه در روز آن قیامت تو الله جل و علا سترت بکنه از عذاب و عقوبتش را دور بگردونه. خب این احادیثه که اومده در شأن مسجد در شأن کسانی که در مسجد میشینن الاچه بچا منتظر نمازن پاداش هایی که گذاشته شده و اون عذاب ها و هایی که از اونها دور میشه به خاطر حضورشون در مسجد و اومدنشون مسجد خب حالا ما به خاطر اینکه این اجرا به طور کامل داشته باشیم چه آداب و احکامی بر ما هست که خودم رو بهش مهیا بسازیم تا اینکه مهیا بشیم به اون مهمانی به اون پذیرایی الله جل و علا اولیش لباس زیبا پوشیدن لباس پاک و تمیز پوشیدن الله جل و علا در قرآن میبوید یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي بني آدم زينتتون زیباییتون رو کنار هر مسجدی منظور هر نمازی داشته باشید قاضی رامین کسی رحمه الله در تفسیر انه میگه ولی هذه الايه و ما في معناها من السنه يستحب التجمل عند الصلاة مستحبه برای هر نماز انسان خودش رو زیبا بکنه زیبا بکنه با لباس خوب با بوی خوب با دهنی پاک و تمیز که ان در احادیس بششاره خواهیم کرد وهذه المسألة رأي ابن عبد عبدالبر ميجي ودر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فرماية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فإن الله أحق من تزيين له إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبه فإن الله أحق من تزيين له اگر كسيس شمومت نماز خون در دو لباس نماز بخونه منظور قبلن كأزهار لونجي ميكوشيدا وروش ردائي ميكوشيدا دو تا لباسشو خوب بپوشه. زیر الله جل و علا از تمامی خلقش مستحقتر بر این که تو برایش خودتو زیبا بکنی. اگر تو به مجلس مهمانی میری با لباس زیبا پاک تمیز حق الله اولاتره که تو ادا بکنی با اون لباس پاک و تمیزت و زیبایت. چطور مثلا وقتی که یک جایی مثلا مراسمی هست چطور در یک مراسم شرکت میکنن عروسی؟ چطور در اون جمع در اون محفل شرکت میکنن با لباس خواب شب خواب میپوشن یا خودشون آراسی میکنن یا خودشون زیبا میکنن همون که تو برای اون محفل خودتو آماده میکنی با لباس زیبا و آراسه الله اولاتر که خودت آراسه بکنی و زیبا بکنی براش این چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بهش اشاره نمیدن حالا یک مسائلی هست بیرامون این حدیث بعدا اشاره بهش خواهیم کرد حالا نمازگوندان خصوصا کسی تابی می میگوشه نماز میکنه که نماز درست نیست یا لباس شفاف کسی لباس توش بخونه اینا همه به جای خودش حالا بهش اشاره خواهیم کرد از جمله اون زینت و زیبایی که ما داشته باشیم پوشش لباس نه تنها باید زیبا باشه بلکه باید عورت ما رو بپوشونه حالا زنی که فقط کف دستش و صورتش جایزه بقیه بدنش کلا عورت مرد شانه تا زیر زانو تا زانوهاش جز عورتش که باید سر نماز پوشیده بشه و اگر اون لباس نازک باشه اون نماز باطله چنانچه چنان امام شافعی رحم الله بیادت و ان صلى في قميص يشف عن لم تجز الصلاه اگر لباسی باشه شفاف اون نماز در اون لباس شفاف لباس پوشیده ران پاش پیداست مثلا خب این لباس که شفافه با اون نمازش ادا نمیشه و همچنین نبوی در مجموع میگه یجبو سترو بما بین بين و لون البشره یعنی رنگ پوست نباد از زیر اون لباس مشخص بشه نباد لباس توری شفاف باشه که رنگ پوست باهاش مشخص بشه فلا یک فیثوبن رقیق لباس رقیق و شفاف نازک با اون نماز ادا نمیشود حالا خصوصا نوجوانان الا زیر سن ده سال معمولا خانواده ها آشون میگیرن در نوع پوشششون با که مثلا میان نماز اینو باید دقت بکنیم رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که میفرماین مرو به بالصلاه فی السبع هاتون یاد بدید که از هفت سالگی بیام به نماز و نماز بخونن ها نه تنها نماز خوندن بلکه آداب و احکام نماز هم باید یاد بگیرن ما باید بهشون یاد بدیم که لباس رو چگونه بپوشن چی پوششی داشته باشن شلوارشون چگونه باشه؟ اون عورتشون پوشیده باشه، نه که هاشون مثلا بیرون باشه سر نامز. سومین، ادب از آداب گفتیم که لباسی که رسول الله دستور داده دوتا لباسی، یک ازار لنگ یکی هم ردا هست. اون جامعی که بر ها انداخته میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يصل يا فی الثوب الواحد ليس على عاتقي شيء یک از شما نماز نخونه در یک لباس، ازار لنگی پوشیده باشه، روی شانه ها شیزی نیست، نه کرده رسول الله صلی علیه وسلم پس شانه ها باید پوشیده بشه، حالا چه میخوام ما در حال احرام باشیم؟ مثلا شخص احرام پوشیده، سنت در تواف شانه راست بیرون باشه، اتباع بهش میگن خب طرف در حال اتباع نماز برپا میشه، یک شانه اش بیرون نماز بکنه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نماز نخونید و بر دوشانه شما چیزی نباشه در حال نماز نخونه که یکی از شانه‌هاتون یا دو تا شانه‌هاتون مکشوفه چیزی روش نیست باید پوشیده باشه این از آداب نمازه خب حالا یک شخصی تابی پوشیده یک حالت تلا مانندی فقط حالا از اون بالا روش دوششه و شانه‌اش نیخالیه نماز خوندن در اینا چه حکمی داره حکم همون نماز خوندن در لنگی که روش قمیص پیراهنی نیست نماز درش درست باید شانه ها پوشنده بشه باید شانه ها پوشانده بشه حالا بحث این که نماز صحیح هست و صحیح نیست این به جای خودش خصوصا حالا در بحث حج وقتی که یک شانه پوشیده بشه نماز صحیح ولی کراهت داره و رسول الله صلی اللہ علیہ اینجا تأکید میکنه بر پوشیدن هر دو شانه در نماز پس آداب نماز و زینت ما در نماز اینه کشانه ها رو بپوشونیم از مسائلی مسائل که ما درش سهلنگاری کوتاهی میکنیم پوشیدن سره پوشیدن سر خب عبدالله ابن حمر وارده که شخصی رو میبینه نماز میخونه بدونه که روی سرش چیزی باشه بعد میگه سرت را چرا نپوشیدی میگه سنت که نیست که من که بکوشم چرا بپوشم سرم این؟ عبدالله بن عمر اسناد میکنه به چی فرمودید الله جل و علا و زینتکم عند كل مسجد میگه نخوندی الله در قرآن گفته خود و زینتکم عند كل مسجد در کنار هر مسجدی شما زینت و آراستگی رو حبس بکنین منظور هر نمازی خاطر همین البانی رحم الله میگه میگه من اون چیزی که برداشت میکنم از این نصوص های اینی که بدون پوشش سر نماز خوندن یک غرب زدگی حالا چه بخواد بدون کلاه یا بدون عمامه یا سر بالاخره باشه نماز خوندن نماز خوندن با برهنگی سر سر پوشش روش نباشه میگه کراهت داره علبانه میگه چون اینجا الله بن عمر استحباب دونسته پوشش سر و استناد میکنه به فرمودی الله جل وعلا خود و زینتکم عنده کل مسجد باتر همین در چهار مذهب همینه یعنی که مستحب سنت که شخص سر خودش را بپوشونه و این از زدگیه که انسان تقلید داشته باشه از اون عرف و از اون آداب و رسوم غربی ها حالا شخص میگه که نه الان قدوس شوال مده عرف جامعه اینه که سر پوشیدن جز زینت نیست جز کدوم زینت نیست؟ زینت اسلامی یا غیر اسلامی اسلام چی گفته به ما اون زینت اسلامی وقتی که این آیه نازل شد خود زینت کوم عند کل مسجد به هنگام نزول این آیه صحابه چی فهمیدن اون آداب اسلامیشون جامعهشون چی میگفت زینت چیه که با سر پوشیده بشه یا سر پوشیده نشه اون چیزی که اونها فهمیدن چنانچه از عبدالله بن عمر روایت شده این که سر باید پوشیده بشه بهترمی تاکید میکردن انکار میکردن بر کسی که سرش پوشیده نیست پوشیشی بر سرش نیست این از مسائلی که از جز آداب حضور در مسجد حضور حتی برای نماز یعنی انسان خودش وقتی که محیا میکنه از آداب خود نمازه غیر از عالم مسجدش از جمله آداب این که سر نماز جلوب دهان خودش رو نپوشونه، جلوب دهان خودش رو نپوشونه، حالا با ماسک، با دسماله یا با هر چیزی هست مگر مگر برای خمیازه مثلا دست جلوب دهانش بذاره مشکلی نیست یا ترس از بیماری داره اون مسائل که علما اجازهش دادن اون به جای خودش ولی اصل در اینه چنانچه رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نهی ازش کردن در صدا ندیدم نه که انکه حدیثم صحیح ابو هريره رضی الله عنه میگید انها رسول الله صلی الله رجل و سلم ان یغطي الرجل فاه في الصلاه اصلا سنه از این کسی که جلوی رو سر نماز بپوشونه چه با دست چه با پارچه ای با دستمالی چیزی بپوشونه از جمله آداب نماز اینکه دهن خوشبو باشه نه بدبو نیایم به مسجد و بوی دهنمون بوی سیر پیاز تازه و دیگر سبزیجاته که بوش مردم را آزار میده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میفرموید من اکل البصله والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا کسی از این چیزا خورد از پیاز و سیر و انواع تره که بدبو هست نه هر سبزی بس نزدیک مسجد و نشه فاین الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم چون ملائکه اذیت میشن از اون چیزی که بنی آدم ازش اذیت میشن یعنی نه مردم را آزار بدید نه هم فرشتگان الله ای که در اون مسجد حضور دارن الان این چیزها مباح خوردن سیب و پیاز مباح تو اگر با این مباح مردم را آزار بدی گناهکاری حال تو با اون چیزی که گناهه بخوای اونها را آزار بدی با بوی سیگار مثلا شخص با بوی سیگار سیگار که حرام یه طرف اون بوی بد حرام کسی را باش آزار بدیم چقدر گناهش بدتر از اونه؟ هرچند که شراب ما را من نکرده مطلقاً کسی را پیاز اینا نخوریم. من کرده در حالی که بدبو باشن و در همین رسول الله صلی الله علیه و اگر شما خواستید بخورید با پختن بوش را بمیرانید بوش را از بین ببرید با پختن بوش از بین میره. بپزید بخورید مشکلی نیست ولی که زنده زنده بخورید بعد با اون بوش بیای مسجد کسی را آزار بدید شما اجازه ندارید. از جمله مسائل آراستگی با بوی خوب دهانه به مسجده من شدیم از بوی بد در کنارش دستور داده شدیم به مسواک زدن همتا که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم می فرمان لولا شفق على امتی لعمرتون بسواک عند کل سلا اگر سخ نبود دستور می دادم برای هر نماز هر مسلمانی مسواک بزنه اگر سخ نبود بر اونا خب توسیه هست بس و همچنین در حدیث دیگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مرضات فرمان سواک مسواک بوی تو خوشبو میکنه و الله عز و راضی میشه خوشنود میشه از جمله آداب آداب خروج برای رفتن به مسجد حالا اینا برای نماز بود مهیا بودن اون لباس و زیباروسی و که الا در هر جا است چه در خونه میخواستی نماز بخوینی چه در بیرون اما مسجد رفتن آدابی داره هرچند که در ضمن اون گفتیم ها گفته شد اون هفت نفری که الله جل و علا زیر سایهش بود یوسی سایه هر را حفظ میکنه یکیشون کسی که قلبش معلق به مسجده مهمان الله وقتی که به مسجد میاد ملائکه برای اون شخصی که اومده به مسجد حضور پیدا کرده ملائکه برایش طلب مغفرت و رحمت میکنه و همچنان برای اون شخص نماز نوشته میشه که در حال نمازه عجر ثواب و پاداش نماز نمیشته این همه در حدیث بهش اشاره شده الان من میگم از اون حدیثی که وارد شده از جمله حدیثی که در بخاری و مسلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایان ان حداکم في صلاه ما دامت و تحبسوا شخص همچنان در حال نماز مادامی که منتظر نماز بعدی یعنی در مسجد نشسته منتظر نماز و الملائكه تقول فرشتگان الله میگویان چی میگویان اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له بهر الله بر ببخش ده یامورد و او را مشمول رحمتت قرارش بده ما لم یقم من صلاته او یحدث مادامی که نرفته بیرون از مسجد او یحدث نواقض از نواقض وضو انجام نداده حدثی مرتکب نشود مادامی که با وضو نشسته منتظر نماز عجل نماز براش نوشته میشه و فرشتگانم دعای مغفرت و آمرزش و رحمت براش می‌کنن این فضیلت حضور در مسجد امادر موعیا شدن برای مسجد همینطوری حدیث ابوری رو دارین که میگه رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن انا ادلکم علی ما يمحو الله به الخطايا بیت النقم چه چیزی سر میشه کفاره گناهانتون بشه گناهانتون الله ببخشه بیا مرزه و یرفع به الدرجات و به اون درجاتتون رتبهت و پیش الله جل و علا بالا بره سبب بشه که مقامین از الله پیدا بکنی شرفی پیدا بکنی حالا بلا یا رسول الله گفتن آری یا رسول الله قال اصباغ الوضوء علی المكاره یعنی که وضو اسباغ الوضوء کامل بوزو گرفتن بوزو رو کامل بگیری خصوصا وقتی که سخته برید مکاره وقتی که هوا سرده با آب سرده آب گرمی کنارت نیست و کثرت الخطا الى المساجد و اینکه قدم برداری با قدم های زیادت به مسجد الله هر بیشتر ثواب بیشتر و انتظار الصلاه و بعد الصلاه بذلکم الرباط و منتظر بودن نمازی پس از نماز دیگر این رباط جهاده و گفته شده این رباط همون فرمودی الله جل علا که در قرآن بهش اشاره میکنه یا ای الذین آمنوا صبروا و صابروا ورابطوا نهایت صبره نفس تو حبس کردی بر طاعت عبادت الله جل علا مشتاق دیدار اللهی مشتاق پذیرایی اللهی جل علا تو همچنان در اون پذیرایی هستی مهمان الله هستی حالا این به طور عموم قدم گذاشتانت بهش این مسجد اول به جای خودش اذانش به جای خودش و مشمولة من كسانك الدعاءش وان السجوات مشانم جاي يخدهش رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهميان لا يرد الدعاء بين الأذاني والإقامة الدعاء بين أذان وإقامة ردنا مشي تو أمادي قبل الصلاة من المسجد منتظر نماز بعدي بعد الصلاة بعد أذان طايل قامه وقت إجابة الدعاء لا يرد الدعاء دعاء رد مشي لا يرد الدعاء بين الأذاني والإقامة حديث السنة ناد أبو داود أسسه صحيح عز جملة حديث كأمادي دار شعنة حضور دار المسجد ف کس به فضیلتی که شامل مأمومه اون نمازگذاری که میاد به نماز جماعت ملحق میشه اما کسی که در خونه نماز بخونه دیگه اینچنین عجر و فضیلتی نداره آمین گفتن با امام رسول الله صلی علیه و وسلم میفرماین اگر امام گفت غیر المغضوب علیه ملد الضالین فقول آمین اگر امام گفت غیر المغضوب علی ملد الضالین امام گفت آمین شما بگید آمین فانه من وافق قوله قول الم کسی که اون امینش موافقت بکنه با امین ملائکه بعد از این آیه غفر له ما تقدم من ذنبه اون گناهانی که از قبل انجام داده بخشیده میشه آمرزیده میشه براش حدیث در صحیحین در بخاری و مسلم حدیث در صحیحین سبحان الله یعنی یک امینت مفرا دادی به امام با سوره فاتحه بعد گفت آمین تا هم گفتی آمین این امینت موافقت داشت و ما با آمین ملائکه الله جل و علا گناهان ما قبلت رو بیامورزه پاداشه عجل الله جل و علا اینجانی پاداشی برات گذاشته گناهانت بخشیده بشه رفتر به مسجد آدابی داره از جمله اون آداب اینه که تو این دعا را بخونی در اون قدم هایی که بسیار مسجد برمیداری اللهم اجعل فی قلبی نورا این دعا را رسول آسان سنم زمانی میخونه که ابن عباس رضی عنه نزش میشه جدیداً که رسول صص وقت زمانی که بیدار شدند مسواک رو برداشتن و وضو رو گرفتن مؤذن که گفت رسول صص رفت به طرف مسجد و این دعا رو کرد این حدیث در صحیح مسلمه رسول صص این دعا رو میخونه اللهم اجعل في قلبي نورا اللهم اجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا بار الله از اون نوری از طرف خودت در قلب من قرار بده بر روی زبانم نوری قرار بده در گوشم در شنیدنم نوری قرار بده در دیدنم و چشمانم نوری قرار بده از عقب و جلوام نوری قرار بده از بالا و پایینم نوری قرار بده بار الها بهم نوری از طرف خودت عطا کن اللهم اعطنی نورا مرا نورانی کن با اون نوری از طرف خودت نور هدایت نور رحمتت گمراه خب این بندگیه این نیازه درگاه الله جل و علم اون رسول الله ساسا با اون مقامش این چیزی رو از الله میطلبه وقتی که تو داری میگه جلو من رو نور قرار بدهن این تاریکی ها رو بردارن این شیطان جلو من بردار ببینم بی شیطان از کنارش رد بشم و با الله جل از شرش پناه ببرم بدونم بهش نزدیک نشم این نوره از جلوام نور از عقب نور از بالا نور از پایین نور تاریکی نزدیکم نشه من زندگیم میشه نور قلبم نور سرشار از نور چشمام سرشاره از نور گوشم سرشار از نور هیچ تاریکی ها نباشه تاریکی نشدوم نبینم این ارزش این دعا هست که ما باید قدرشو بدونیم و حفظش باشیم توای ساده‌ای سختی نیست بس وضو گرفتن و این دعا را خوندن و قدم برداشتن مثل این مسجد جمله آداب این که با سکینت باشه با بقار باشه و الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ادنوا بالصلاه و وانتم تمشون و علیکم السکینه اگر نماز برپا شد اقامه نماز شد بیایید به سوی نماز در حالی که شما دارید پیاده میایید نه هر نه شتابان نه دوان دوان و علیکم السکینه و با بیایید فما ادرکتم فصلو اون قدری که به نماز رسیدید بخونید وما فاتکم فاتمو اون قسمتی که فوت شده رو خودتون کامل بکنید دورکت نرسید دورکت بعد از اون میخونید بالفرز اون دورکتی که نرسید دوباره خودتون تنهایی میخونید از جمله آدابی و مسجد رفتن پیاده رفتنه فرموده تو که در بحث جمعه هم شد تو چه کسی میتونه اگر در توانش هست. اما اگر نبود خصه میشد حسین در نمازش دیگه خشوعش از دست میداد مشکل نیست که سن سواره بیاد و مسجد ولی خب اصل اینی که انسان پیاده بیاد چون رسول الله صلی الله علیه و آله در فرمودن ال ادل لكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع الدرجات چیزی بیت النجا حسابش گناهانتو محو بشه پاک بشه و درجاتتونو نزد الله بالا بره فرمودن وكثرت الخطا الى المساجد قدم برداشتن به سوی مسجد وهمشين در حديث دي قادر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفير ميان إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فابعدهم هرچقدر انسان خونش از مسجد دورتر باشه قدم بیشتر برداره ثوابش هم بیشتره و همچنین در حدیث دیگر در رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند بشری المشائین في الظلم الى المساجد ابن نور التام يوم القيامه و نهیک در طریقی قدم به مسجد برمیدار نماز صبح نماز عشا بلند میشه در طریقی میاد به مسجد از باب مجدگانی رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که الله میگوید بهنها بشارت و مجدگانی بده به نور کامل در روز قیامت اون لحظه‌ای که روی پل صراطی که از منازب تر اون لحظه‌ای که تو نیاز داری بر پر سرات که نوری به دست بشه جلو خود را ببینید به نوری تام از الله جل و نه نوری ناقص نه نوری که تو اون بیفتی نه نوری منافقی که خاموش بشه بلکه نوری تام و کامل اونهایی که در تاریکی قدم به مسجد برمیدارن بهشون مجدگانی بده ای محمد اون نوری کامل از سوی الله جل و این فضیلت چه هم نماز در تاریکی که شب نماز عشاء نماز صبح و این دوتا نماز خصوصا که الا تاکید شده درش و این دوتا نمازی که منافقین ازش رویگردانند چون کسی اونها را نمیبینه الله جل و علا اینجین مجدگانی را گذاشته بشر المشعین فضلم المساج به نور تب بشارت بهش آمده مجدگانی بهش میده با نوری کامل در روز قیامت از جمعه آداب رفتن به سوی مسجد این که مادامی که منتظر نمازه انگوشتا را در هم فرو نبره اینطوری انگوش شرده در هم فرو نبر نبره نبره چنان چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اگر توضّع احدوكم اگر کسی شما گرفت فاحسن وضو آه و خوب بزوجشو گرفت، ثم خرج عامداً الى المسجد رَفَسِي مسجد فَلا يُشَبِّكَ النَّيَدِيَتَ لَسَارَةَ در, در هم فرو نبره، فإنّه في صلاة او در نمازه نه شدیم از اینکه انگوش شرده در هم فرو نبره، اما بعد از نماز مشکلی نیست، بعد از نماز مشکلی نیست، این در حالی منعه که تو منتظر نمازی و ما به مسجد به همین اکتفا میکنیم سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده صلى الله عليه محمد و آل محمد